بر شما من مهدی خدادادی هستم سازنده و راوی پادکست الف با کمک دوستانم سعی می کنم تو هر قسمت از این پادکست ای رو برای شما روایت کنم در این قسمت از پادکست الف طبیب پرنده اثر مولییر رو خواهید شنید قرن هاست که فرانسه نقش خیلی پررنگی در دنیای تئاتر و نمایشنامه‌نویسی داشته از درام های قرون وسطایی که همگی یا در مت و ستایش مسیحنت بگیر تا همین نمایشنامه های متنوع قرن حاضر. فرانسویا تا اوایل قرن 18ام ژانر برتر رو تراژدی و درام قرون وسطایی می دونستند. فکر می کردن فقط این ژانره که میتونه روح آدم رو تصویه کنه. اونا ژانر کمدی رو پست می چون کمدی بدیها و خباستهای انسانی رو به نمایش میگذاره. در واقع در اون زمان کمدی برخلاف تراژدی و درام به مردم سطح پایین جامعه می پرداخت و مردم طبقه پایینتر جامعه به تماشای کمدی می رفتند در صورتی که مخاطب تراجدی و درام در فرانسه بورژواها و ها بودند برای همین کمدی رو ژانر پستی می دونستند اواسط قرن 17 بود که کمدی هایی توسط نویسنده و بازیگری جدید روی کار اومد کسی که برخی الان اون رو بزرگترین کومیدی نویس و بازیگر قرن 17 فرانسه میدونند دونن. جاند باتیست پوکالن یا مولیر مولیر سال 1622 در یک خانواده اشرافی در پاریس متولد شد و در جوانی وارد کالج شد تا حقوق بخونه. اما مشخص نیست تیج وقت تحصیلاتش رو به پایان رسوند یا نه. در 21 سالگی به همه ثروت و اعتبار خانوادهش پشت کرد و رفت که به رویای بازیگری تئاتر بپردازه. میگن اسم مولیر رو هم برای این انتخاب کرده که ارتباطش رو کاملا با خانواده اشرافیش مخفی کنه و البته بار شرم داشتن یک بازیگر اونم کمدی در خانواده رو از دوش خانوادهش برداره. مولیر بعد از یه سری مشکلات با یه گروه بازیگری که خودش تأسیس کرده بود، پاریس رو ترک می و در دوازده سالی که با گروهش به جاهای مختلف می شهرت نسبتاً خوبی کسب می و حمایت فیلیپ اول برادر شاه فرانسه رو کسب می با همین حمایت و شهرت به پاریس بر می و اونجا در لوور، در حضور لویی چارده یکی از نمایشتاماهای خودش رو اجرا می کنه. بعدها حسابی به کمکش میاد چون گروه های مختلف مثل کشیش ها شروع میکنن به دشمنی با مولیر اما شاه سفت و سخت از مولیر حمایت میکنه و حتی پدرخانده فرزند اول مولیر هم میشه مولیر برعکس تمام نمایشنامه هم همعصر خودش که والا هدف نمایش و نمایشنامه رو درس و پند اخلاقی دادن به مخاطب می دونستند. هدف اصلی و نهایی نمایش رو سرگرم کردن و خندوندن مخاطب می دونست تماشا چیان برای مولیر چنان جایگاه مهم و بلندی داشتند که بهترین قاضی برای ارزیابی کیفیت یک نمایش رو میزان استقبال مخاطبین می دونست. اگر از اثری استقبال می کردند و می خندیدند, یعنی خوب بود؟ و اگر نمی خندیدند و سرگرم نیم شدند یعنی بد بود. کمدی های مولیر تنها به یک نوع کمدی محدود نمی شدند و این نویسنده پرکار، انواع کمدیها ها مثل کمدی شخصیت، کمدی دوز و کلک، کمدی اخلاق و کمدی سیاسی رو نوشته. تنظیک که مولیر در آثارش استفاده میکرد فقط محدود به یک نوع نمیشد. اون توی آثارش کمدی و تنز رو در قالب کلمات، حالات بدنی، شخصیتها، تکرار و موقعیتهای کمیک پیاده می کرد. برای همین، آثار مولیر از کاملترین کمدی‌ها ها برچه مرده پایان تموم کمدی‌هایی هایی که مولیر می‌نوشت خوب و خوشایند بودند. در سال 1665، مولیر نمایشتامه دونجوان رو منتشر میکنه این نمایشنامه با نقدهای خیلی زیادی مخصوصا از طرف مذهبی‌های اون زمان فرانسه روبرو شد چون در نمایشنامه مسائل اخلاقی و هنجارهای اجتماعی زیر پا گذاشته می‌شدند این نمایشنامه چنان تأثیری روی جامعه گذاشت که باعث به وجود اومدن اصطلاحی جدید در زبان فرانسه و حتی دنیا شد دونجوانیسمه از اون به بعد خیلی از مردم به مردی که زنها رو وابسته و جذب خودش میکنه میگفتن دونجوان. هنوز هم میگن. توی پرانتز بگم که دیویس سال بعد اصطلاح معادل همین استلاح این بار برای خانوم ها به وجود اومد. این اصطلاح بواریزم بود که تحت تاثیر رومان مادام بواری به وجود اومد. مولیر هم کمدی‌های منصور مینوشت و هم کمدی‌های پنج پرده‌ای به شعر. علاقه زیادش به باله باعث شد که ژانر جدیدی هم به وجود بیاره که اسمش کمدی باله بود. کمدی باله. این جانر از کمدی رقص و موسیقی تشکیل می شد. تصور کنید یک کمچین اثری چقدر می تونه تماشاگر خودش رو سرگرم کنه. مولیر در سالهای آخر زندگیش درگیر بیماری سل شد. البته این بیمار بودنش باعث نشد کم کمکار بشه و در 17 فوریه سال 1673 آخرین اثرش رو با بازیگری خودش به روی صحنه میبره. اون با وجود حال بدش به روی صحنه میره و در حین اجرا روی صحنه تشنج میکنه. مولیر رو سریعا به خونش میبرن و بعد از لحظاتی در پنجاه و یک سالگی از دنیا میره. مولیر برخلاف بسیاری از هنرمندان دیگهی که در قبرهای معمولی دفن میشدن، به واسطه شهرت و محبوبیتش پیش مردم و شاه در یک آرامگاه در شهر پاریس به خاک سپرده شد. در سال 1680 کمپانی تئاتر مولیر با یک گروه تئاتر ادغام شد و کمپانی کمدی فرانسوی کمدی فرانسز شکل گرفت. این کمپانی همچنان فعال و پرکار و قدیمی ترین کمپانی تئاتر دنیا شمرده میشه. حالا که با نویسنده بسیار موثر نمایشنامه امروز آشنا شدیم، ازتون دعوت میکنم که این قسمت از پادکست علیف رو بشنوید. در پایان درباره این نمایشنامه هم به طور خاص صحبت خواهیم کرد. این شما و این نمایشنامه طبیب پرنده اثر مولیر. والر جوون عاشق با بی صبری منتظره که سابین وارد بشه سراسیمه میره سمتش و ازش میپرسه خیلی خب سابین بگو ببینم چه خبری آوردی سابین که کمی نگران به نظر میرسه میگه راستش خبره خیلی زیادی دارم اموم پاش رو توی کفش کرده که دخترموم لوسیل رو به عقد ویلبرکن در بیاره کار تا جایی پیش رفته که اگه دخترمون به شما دل نداده بود ممکن بود همین فردا عروسی کنند به هر حال چون دخترمون راز عشقی که به شما داره رو به من گفته و از طرفی هم میدونم که این اموی بیشرم من کوتاه بیا نیست ما تصمیم گرفتیم که عروسی عقب بیفته. این شد که دخترمون خودش رو به مریضی زده و عموی ساده لوح و زودباور منم من رو فرستاده که یه طبیب ببرم اونجا شما میتونید کسی رو پیدا کنید؟ یه دوست یا یه کسی که طرف شما باشه و دستور بده که مریض باید برای عوض شدن حال و به روستا بره. اون پیره هم حتما دخترمون رو یه مدت میفرسته به کلبه ای که انتهای باقی ماست. اینطوری میتونید بدون این که عمون به فهمه برید پیشش و باش ازدواج کنید. بعدش هم بذارید عمون و ویلبرکن هر چقدر که دلشون میخواد فوش بدن. والر که دست پاچه شده میگه ولی من با این حالم چطوری همچین طبیبی پیدا کنم بعدش کی حاضره به خاطر من همچین خطری بکنه باید صادقانه اینو بگم که من همچین کسی رو ندارم سابی این کنگاری انگاری فکری به سرش زده میگه حالا که بهش فکر میکنم چطور به نوکرتون بگید لباس تبابت بپوشه اون پیرمرد خیلی راحت گول میخوره ها والر میگه ولی سگانارل خیلی ابلهه یه آدمیه که گند میزنه به همه چیز. با این همه چون دیگه کسی رو سراغ نداریم مجبوریم ازش استفاده کنیم. البته الان معلوم نیست کجاست. آها. اینهاش پیداش شد. سگنارل میاد داخل. والر با لحنی دوستانه میگه که ای وای سگنارل عزیزم. چقدر خوشحالم که میبینمت. من برای یه کار خیلی مهم بهت احتیاج دارم. اما از اونجایی که نمیدونم از پسش برمیای یا نه سگانارل با غرور میپره وسط هر فربابش و میگه آقا از پسش برمیام یا نه؟ فقط کافی شما یه کار مهم به من بسپارید و یه چیز مهم ازم بخواید والر میگه که من ازت میخوام که نقشه طبیب رو بازی کنی سگانارل جا میخوره و میگه آقا منو و تبابت هرچی ازم میخواید بخواید چشم ولی تبیب شدن رو باید بگم نه. من نوکر شمام قربان. همچین چیزی عمرن نیستم. آخه قربان شما بگید. من چطوری این کار بکنم؟ والر با هیله میگه که اگه این کار بکنی به ده اشرفی میدم. سگانارل میگه اگه ده اشرفی میدید که من غلط بکنم بگم تبیب نیستم. خیلی هم تبیبم. ولی آقا همونطور که میدونید من خیلی باهوش نیستم. برای همین فرزن که من طبیب بشم بعدش کجا باید برم والر میگه که باید بری خونه گرجیبوس و از دختر مریضش ایادت کنی اما توی ابله‌ای هستی که ممکنه به جای چیزی که ازت خواستم سگانارل میپره وسط حرفشو میگه ای بابا آقا نگران نباشید من بلدم بهتر از تمام طبیبای شهر هر آدمی رو به دیار باقی بفرستم یه ضرب مثال هست که میگه بعد از مرگ طبیب میاد ولی وقتی من وارد میدون بشم میگن بعد از طبیب مرگ میاد. ولی راستش الان که دارم فکر میکنم انگار سخت آدم نقش طبیبو و بازی کنه ها. اگه یه وقت همین کارا رو خراب کنم چی؟ والر میگه که کار سختی نیست. گرژیبوس آدم ساده لوحیه و هرچی تو بخوای بگیر و باور میکنه. فقط کافی از بغرات و جالینوس حرفای گنده گنده بزنی و روتو زیاد کنی. سگانارل که امیدوار شده میگه منظورتون اینه که باید از ریاضیات و فلسفه حرف بزنم بسپریدش به من اگه اون پیرمرد همونطور که فرمودید راحت گول میخوره من هر سوالی ازم بشه رو جواب میدم فقط کافیه شما یه دونه روپوش تبابوت برام پیدا کنید و بهم به بگید انتظار چه چیزایی رو دارید و بعدشم مواجبم رو یعنی همون دهش رفیم رو بدید والر با کمال میل قبول میکنه و هر دو از اتاق بیرون میرن از اون طرف گرژیبو سراسیمه نوکرش گرورنه رو صدا میکنه و بهش میگه که سری برو برای دختر بیمارم یه طبیب بیار دیالا گرورنه با اعصابی خورد و اعتراض میگه که لعنت بر شیطون آقا برای چی میخوایید دخترتون رو به عقد پی، یه پیرمرد در بیارید مگه متوجه نیستید دلیل مریضش اینه که دوست داره به یه آدم دیگه که جوونه دل ببنده. رابطه این دوتا چیز رو که میبینید که میگم چی میگم و میفهمید چی میگم بین این دوتاست. این آخر حرفاش واقعا دریوری میگه و این اشتباه خوندن من نیست. گرژی بوس که همینطور که داره هرس میخوره میگه برو زود ببینم. ای بابا انگار مجبوریم عروسی رو با این ناخوشی عقب بندازیم. گرو دماغ میشه و میگه من برای همین اصاب هم خورده دیگه مثلا قرار بود امشب تو این عروسی دلی از ازا در بیارم ذهی خیال باطل چشم آقا چشم الان میرم یه طبیب میارم که هم منو خوب کنه هم دخترتونو هرچن امید زیادی ندارم گرو اینو میگه و میره دنبال طبیب گرژی بوس توی فکره و همینطوری عرض و اتاق رو تقیم میکن که برادرزادش سابین با خوشحالی وارد میشه و میگه که امون جان خوب شد دیدمتون تا این خبر خوش رو بهتون بدم من باهوشترین طبیب دنیا رو با خودم آوردم مردی که از خارج اومده و مهمترین اسرار بیماری ها رو میدونه بیشک این طبیب دخترموی عزیزم و درمان میکنه خوشبختانه در جستجو که بودم این طبیب رو نشونم دادم و منم آوردمش خدمت شما انقدر این طبیب باهوشه که من با خودم میگم کاش من مریض بودم و اون درمانم میکرد گورجیبوس بسیار مشتقانه میپرسه کجاست سابین میگه همینجا بفرمایید اومد داخل گورجیبوس ملتمسانه میگه جناب طبیب من خاک پای شمام من بودم که فرستاده بودم پیداتون کنن بیاید دختر بسیار بیمار منو ببینید من تموم امیدم به شماست سگانارل؟ طبیب علکی داستان ما که با لباس تبابت، قیافه و ژست گرفته میگه بقرات میگه البته جالینوس هم میگه که قطع به یقین وقتی کسی بیماره حالش خوب نیست شما بایدم تموم امیدتون رو به من ببندید چون که من بزرگترین ماهرترین و تیزترین طبیب در زمینه سبزیجات حیوانات و مبادد معدنیم یه وقت فکر نکنید من از طبیبان معمولیم تمام طبیب ها در مقایسه با من خام و ریزن من خیلی استعدادهای های خاصی دارم من استاد اسرار و جادو جنبلم سلام علیک سلام علیک رودریگ شهامتی داری آیا سینیور سی سینیور نو پر اومنیا سکولا سکولوروم تکون نخورید بذارید ببینم چتونه اینو میگه و سری نبض گورجیبوس رو میگیره توی دستش. سابین یهو میگه ای وای مریض که این نیست، دخترش مریزه. سگانارل با اطمینان میگه که مهم نیست، خونه پدر و دختر یکیه. برای همین از طریق خونه پدر میتونم بفهمم مریضی دختر چیه. جناب گورجیبوس، آیا ممکن ادرار مریضو ببینم؟ گورجیبوس میگه بله، البته. سابین، بوده برو یه کمی ادرار دخترمو بیار. سابین سریع هم میره بیرون جناب طبیب من خیلی میترسم که نکنه دخترم بمیره سگانارل میگه که اصلا نباید این کار بکنه نباید به این دل خوش بکنه که قبل از تجویز طبیب میتونه بمیره سابین با ظرف ادرار برمیگرده به به ببینی چه حرارتی هم از ادرارش داره بلند میشه این نشوندهندهی التحاب روده است بح, بح البته این ادرار خیلی هم بد نیست سگانارل ظرف رو به طرف دهنش میبره. گرجی بوس سراسیمه میگه: آها چیکار میکنید آقا؟ می‌خواید بخوریدش؟ سگانارل با خیال راحت میگه: تجرب نکنید، تجرب نکنید. همه ای طبیبا معمولا به نگاه کردن بهش اکتفا میکنند، ولی من این که با طبیبای معمولی فرق دارم، اونو میخورم چون با چشیدن مزش بهتر میتونم علت و عواقب مریضی رو تشخیص بدم. ولی راستشو بگم، مقدارش کمتر از اونی بود که بتونم تشخیص بدم. بگید بازم ادرار بیارن سابین اطاعت میکنه و سری میره و با ادرار برمیگرده میگه با هزار زحمت مجبورش کردم ادرار کنه سگان یه نگاهی به ظرف ادرار میندازه و با اخ میگه یعنی چی؟ فقط همین؟ بهش بگوه بیشتر ادرار کنه خانم. بیشتر؟ اگه ادرار تموم مریضا اینجوری باشه دلم میخواد همه عمرم طبیب باقی بمونم آقای گرجیبوس چرا دخترتون قطره قطره میشاشه باید به حال این دختر گریه کرد انگار باید برای شربت ادرارآور تجویز کنم میشه مریض رو ببینم سابین میگه از جاش بلند شده. اگه بخواید میتونم برم بیارمش لوسیل وارد اتاق میشه و سگانارل بهش میگه که خب خانم جوان پس شما مریضی لوسیل آروم جواب میده که بله آقا سگانارل میگه چه بد این نشون میده که حالتون خوب نیست در سر و کمرتون احساس درد شدید هم میکنین. لوسیل میگه بله آقا سگان با غرور میگه حدس میزدم بله طبیب بزرگ در مباحث مربوط به طبیعت حیوانان چیزای جالبی میگه چیزای خیلی جالب مثلا چون اخلاط چهارگانی بدن دارای پیوستگی هستند رابطه زیادی هم با هم دارن و چون مالی خولیا و غم دشمن شادیاند و چون سفرایی که در بدن پخش میشه رنگ ما رو زرد میکنه و چون هیچ چیزی برای سلامتی خطرناکتر از مریضی نیست میتونیم همصدا با اون مرد بزرگ بگیم که حال دخترتون خیلی خرابه همین الان باید براش نسخه بنویسم گرجیبوس با دست پاچگی میگه یالا یه میز و یه کاغذ و قلم جور کنید سگانارل میگه اینجا کسی هست که نوشتن بلد باشه گرجیبوس با تعجب میگه یعنی چی بلد نیستی سگانارل سری بحث رو عوض میکنه و میگه ای وای داش یادم میرفت اینقدر چیزای عجیب و زیادی برای فکر کردن دارم که نصفش یادم میره به نظرم لازمه که دخترتون یکم حال و هواش عوض بشه و یه مدت باید بره به ییلاق تا استراحت کنه گورجی بوس میگه اتفاقا ما یه باغ خیلی زیبا داریم که چنطو اتاقم داره اگه به نظرتون جواب میده که بفرستیمش اونجا سگانارل میگه بریم یه نگاهی بهش و بعد همگی به سمت باغ راه می‌افتند. در همین اصلا خبر مریضی دختر آقای گورجیبوس به یکی از دوستان خانوادگیشون که یه وکیل میرسه. وکیل به سمت خونه آقای گورجیبوس راه می‌افته و در راه با خودش میگه که شنیدم که میگن دختر آقای گورجیبوس مریضه. باید برم جویای احوالش بشم و به عنوان دوست خانوادگی هر خدمتی که از دستم برمیاد ازش دریغ نکنم. آهای، آهای، آقای گرجیبوس تشریف دارن؟ گرجیبوس میگه: قربان قدم رنجه فرمودید. مننت گذاشتید به سر ما. وکیل میگه: به محض اینکه فهمیدم دختر شما حالش بد شده، اومدم که هم ادای وظیفه کرده باشم و هم ببینم از من به عنوان وکیل کمکی ساخته است یا نه. گرجیبوس میگه که تا همین الان داشتم در اتاق با باهوش ترین مرد دنیا حرف می زدم وکیل که کمی شک کرده میگه حالا میشه این مرد رو دید گرجیبوس هم سریع میره و سگانارل رو میاره جناب طبیب یکی از خبره ترین دوستانم اینجاست و خیلی دوست داره با شما حرف بزنه سگانارل میگه آقای گرجیبوس من وقت زیادی ندارم باید برم مریضای دیگر رو هم ببینم پدر رو به وکیل میکنه و میگه در حضور شما من جسارت نمیکنم. وکیل که به این طبیب شک کرده میگه جناب طبیب. بر اساس براساس اونچه که از زبان آقای گرجیبوس در وصف دانش و استعداد شما شنیدم، الان که خودم افتخار آشنایی با شما رو پیدا کردم در پوست خودم نمی گنجم. پس به خودم اجازه دادم که یک سلامی به شما عرض کنم. بعد اعتراف کنم که همه کسانی که در علم و دانش زبان زد و ماهرند شایسته همه جور ستایش هستند. مخصوصا اونایی که به شغل شریف تبابت مشغولند. این رشته علاوه بر اینکه که خیلی پرفایده است، چندین علم دیگر رو هم در خودش دربر میگیره. برای همین احاطه کامل به این رشته خیلی سخت و طاقت فرساست. است. بقرات بزرگ و حکیم در اولین کلمات قصاری که گفته، به لاتین میفرماید زندگی کوتاه است دستیابی به هنر طولانی فرصت زود گذر، راه تجربه پرخطر ارزیابی دشوار اسکانارل برای اینکه کم نیاره از خودش کلماتی ساختگی بر اساس آخرین کلمه لاتین وکیل ردیف میکنه و رو به گرژیبوس میگه فیسیل تانتانین تا بریل کامبوستیتوس. وکیل میگه که به نظر من شما از اون دسته طبیبایی نیستید که فقط و فقط به طب استدلالی و جذمی اعتقاد دارن و فکر میکنم هر روز با موفقیت کامل به کارتون میپردازید اولین کسایی که شغلشون تبابت بود، مقام خودشون رو به واسطه دونستن این علم و معالجات روزانشون انقدر بالا بردن که اونا رو با خدایان همردیف میدونند مباد خدایی نکرده طبیبی رو که سلامتی رو به مریضش برگردونده سرزنش کنیم چون سلامتی همیشه به دارو و دانش بستگی نداره گاهی هم بیماری تر از علم و دارو قربان میترسم بیشتر از این مصدعه اوقاتتون بشم امیدوارم در دیدار بعدی افتخار داشته باشم فرصت بیشتری برای گفتگو باهاتون پیدا کنم البته وقت شما بسیار با ارزشه بعد از این وکیل با همگی خداحافظی میکنه و میره بیرون گرجیبوس رو به سگانارل میکنه و میگه نظرتون راجع به این آقا چی بود؟ سگانارل میگه هی بد نیست اندک سوادی داره. اگه یکم بیشتر اینجا میمون درباره موضوع برجسته و پیچیده باش بحث و گفتگو میکردم. اما فعلا باید از حضورتون مرخص بشم. بعد با همدیگه دیگه میرم بیرون از خونه و گرجیبوس با لبخند رو به سگانارل میکنه و بهش پول میده. سگانارل هم دستش رو عقب میکشه و میگه شکار میکنید آقا من هیچ پولی قبول نمی کنم من که آدم من طلبی نیستم و در این حال که داره اینا رو میگه پول رو میگیره و ادامه میده من نوکر و چاکر شمام این رو میگه و بیرون میره والر نگران و مسترب منتظر سگانارله که سگانارل با لباس نوکریش وارد میشه والر با شوق و ذوق میگه که آها اینه هاش خیلی خوب سگانارل بگو ببینم از آخرین باری که دیدم تا الان چیکار کردی سگانارل با قیافه مغرور و سربلند میگه که کاری کردم کارستون اینقدر توی کارم خوب بودم که گرجیبوس واقعا باورش شده بود که من یه طبیب باهوشم رفتم خونه و بهش دست دستور دادم که دخترشو برای نفس تازه کردن بفرسته بره اون الان توی کلبه انتهای باغ، اونقدر از پیرمرد دوره که میتونی بری با خیال راحت ببینیش والر با ذوق و خوشحالی میگه که ای وای چقدر خوشحالم کردی باید هرچه سریتر برم ببینمشو بیشتر از این زمانو از دست ندم والر بعد از گفتن این جمله خارج میشه و سریع از خونه بیرون میره سگان با خودش میگه که گرژیبوس پیر واقعا گاگول و ساده ایه میذاره راحت سر شیره بمالن یهو گرژیبوس وارد میشه و سگانارل میگه ای وای خدایا به دادم برس هرچی رشته بودم پنبه شد الان که بسات تبابت هم به هم بخوره باید هر طور شده دوباره گولش بزنم یادمونه دیگه سگانارل الان با لباس نوکریش روی صحنه حاضره گورجی بوس نزدیک میشه و به سگانارل که لباس نوکری تنشه میگه صبح خیر آقا سگانارل میگه سلام قربان چاکر و مخلص شما میبینید که در مونده و ناراحتم آیا طبیبی رو نمیشناسید که همین تازگی‌ها به شهر اومده و کار تبابتش بین و رو است گورجی بوس میگه چرا میشناسمش؟ همین الان از خونم رفت سگانارل با قصه میگه قربان من برادرشم ما دو و این دوتا لوبیا به هم شبیهیم. اونقدر که گاهی ما رو با هم اشتباه میگیرن. گرجی بوس یکم دقت میکنه به قیافه سگانارل و میگه که لعنت بر شیطون. نکنه دارم اشتباه میبینم. بگید ببینم اسمتون چیه؟ سگانارل میگه آقا من خدمتگذار شما نارسیزم هستم. از شما چه پنهون؟ یه مطب برادرم بودم و دستم به دوتا شیشه اوساره دارویی لبه میز خورد و اوساره ها ریخت و همه جا پخش شد برادرم اونقدر از من ناراحت شد اونقدر از من ناراحت شد که فورا منو از متع و بعدش از خونه انداخت بیرون از اون روز دیگه حاضر نیست منو ببینه الان خیلی بیچاره شدم هیچ رفیقی هم توی این شهر ندارم گرجیبوس بوس با خیال راحت میگه که نگران نباش خودم آشتیتون میدم برادرتون یکی از دوستان منه. بهتون قول میدم که کاری کنم شما رو ببخشه. به محض اینکه ببینمش این موضوع رو باهاش در میون میذارم. سگانارل میگه که خیلی از شما ممنونم آقای گرجیبوس. این رو میگه و فوراً با لباس تبابت برمیگرده. گرجیبوس سگانارل رو با لباس تبابت میبینه و به سمتش میره. سگانارل طوری که انگار همین الان از سر کار برگشته میگه باید بگم که وقتی مریضا گوش به حرف اطبّا نمیدن و تو کار عیاشیان باید همشون رو به حال خودشون گذاشت تا گورجی بوس میگه که آقای طبیب من چاکر شمام میخواستم در رقم یه محبتی بکنید سگانارل میگه چه محبتی باید شما رو هم معاینه کنم گورجی میگه جناب طبیب چند لحظه پیش برادرتون رو دیدم خیلی کلوف و ناراحت بود. سگانارل میگه آقای گورجیبوس اون آدم خبیثیه اما اون از کرده خودش پشیمونه. آقای گورجیبوس: دارم بهتون میگم اون آدم دائم الخمریه. گورجیبوس با ناراحتی میگه ای وای قربان نکنم میخواید این مرد بیچاره رو از اینم ناامیدتر کنید. سگانارل میگه دیگه ازش چیزی به من نگید. این مرد بیشرم و مخبث رو ببینید که وقت شما رو برای صلح و آشتی با من گرفته. خواهش میکنم دیگه ازش جلوی من حرفی نزنید. گرجیبوس ملتمسانه میگه جناب طبیب به خدا قسمتون میدم به خاطر منم که شده برای درتون رو ببخشید. اگه بتونم کاری کنم که نظرتون عوض شه بی انجامش میدم. خب من قول دادم بهش. سگانارل میگه که حالا اینقدر با خواهش و تمنو اصرار میکنید باشه میبخشمش. با اینکه قسم خورده بودم هیچ وقت نمیبخشمش. باور کنید برام خیلی سخته. ولی به خاطر رضایت شما این کارو میکنم. فعلا حافظ آقای گرجیبوس. گرجیبوس با خوشحالی میگه که جناب طبیب من خاک پای شما. میرم این طفله بیچاره رو پیدا کنم تا بهش این خبر خوش رو بدم. گرجیبوس از صحنه خارج میشه. سگانارل با لباس نوکری بر میگرده و به والر که خیلی شاد و شنگوله میگه آقا گرجیبوس سر را منو دید. اگر همون لحظه گولش نزده بودم همه چیو میفهمید. نگان گرژیبوس رو میبینه و به والر میگه ای وای فرار کن فرار کن داره میاد و والر سریع از صحنه خارج میشه گرژیبوس که خیلی خوشحاله میاد سراغ سگانارل با لباس نوکری میگه داشتم همه جا دنبالتون میگشتم تا بهتون خبر بدم با برادرتون صحبت کردم و به هم گفت که شما رو میبخشه اما برای اینکه مطمئن بشم میخوام در حضور خودم با همدیگه روبوسی کنید حالا شما برید خونه من من میرم دنبال برادرتون بگردم. سگانارل میگه ای وای آقای گورجی بوس فکر نکنم بتونید الان پیداش کنین. بعدشم من خونه شما نمیمونم میترسم خیلی عصبانی باشه ازم. گورجیبوس میگه ای بابا شما همونجا میمونید چون در رو روتون قفل میکنم. همین الان میرم تا برادرتون رو پیدا کنم. اصلاً هم لازم نیست بترسید. من بهتون قول میدم که از دستتون عصبانی نیست. گورجیبوس اینو میگه و میره بیرون دنبال برادر سگانارل سگانارل میره لب پنجره و با خودش میگه خدایا این بار دیگه گیر افتادم راه فراری ندارم اوضا بد جوری خرابه دست کمیش داغ جانانه رو شونه ها میزنم نخشم نگرفته ولی من نباید ناامید بشم حالا که این همه تلاش کردم بهتر تا آخرش پیش برم درست باید یه کلک دیگه هم بزنم و نشون بدم که سگانارل استاد کلک باز است. سگانارل این رو میگه و از پنجره می پری بیرون. گرورنه نوکر گورجیبوس که بیرون وای صده سگانارل رو می بینه که از پنجره بیرون پریده و میگه ای وای خدایا چی می بینم؟ عجیبه. مثل شیطون از این پنجره می پره بیرون. بهتره همینجا کشیک بدم ببینم چه خبره. گورجیبوس با خودش میگه نمیتونم پیداش کنم. نمیدونم کجا رفته. یه چشمش به سگانارل میفته که با لباس تبابت داره میاد و میدوه سمتش سمتشو میگه آها پیدا شد جناب طبیب باید بگم که فقط بخشیدن برادرتون کافی نیست ازتون خواهش میکنم برای این که خاطر من جمع بشه باش روبوسی کنید همه جا دنبالتون گشتم که ازتون خواهش کنم در حضور من باش روبوسی کنید سگانارل میگه آقای گرجی بو داری شوخی میکنید دیگه همین که بخشیدمش کافی نیست من دیگه واقعا نمیخوام ببینمش گرجیبوس با خواهش و تمنا میگه جناب طبیب به خاطر منم که شده سگانارل میگه خیلی خوب خیلی خوب نمیتونم درخواستتون رو رد کنم بگید بیاد اینجا در حین اینکه گرجیبوس به سمت اتاق میره سگانارل سری لباس شب عوض میکنه و از پنجره به داخل اتاق برمیگرده گرجیبوس وارد اتاق میشه و میبینه که با لباس نوکری دم پنجره است بهش میگه برادرتون اونجا منتظر شماست. به بهم قول داده که طبق خواسته من عمل کنه. سگانارل که دم پنجره ایستاده میگه آقای گرجیبوس ازتون خواهش میکنم که بگید بیاد اینجا. التماستون میکنم کنم. بذارید دور از چشم همه اصر خواهی کنم. خدا میدونه شاید قصدش این باشه که آبروی منو جلوی همه ببره. گرجیبوس قبول میکنه این درخواست رو و از اتاق بیرون میره. سگانارل هم سری از پنجره بیرون میپره. و لباس تبابت میپوشه. گرجی بوس که فکر میکنه سگانارل توی اتاق از بیرون اتاق بهش میگه بله حق با شماست. بعد میرسه و به طبیب میگه که جناب طبیب برادرتون میگه بابت کاری که کرده خیلی ناراحته و میخواد قدم رنجی کنید بیاد توی اتاق تا در خلوت اسرخایی کنه ازتون. هم کلید اتاق. سگانارل میگه که برای رضایت شما حاضرم هر کاری بکنم. الان میشناوید که چه جوری باهاش حرف میزنم. بعد سگانورل وارد اتاق میشه و میگه آهان اینجایی پس خبیس بعد با صدای خودش به خودش جواب میده که برادر عزیزم از تو معذرت میخوام قول میدم دیگه خطایی نکنم ای ایاش خبیس قول بده که دیگه ازت خطایی سر نزنه یادت میدم چه زندگی کنی دیگه وقاحت بسه نباید بیشتر از این مزاحم آقای گرجیبوس بشیم و با حرفای احمقان سرشون رو ببریم برادر عزیزم میگم ساکت شو نمیخوام باعث ناراحتی شما ساکت شو خبیس گرورنر به گرجیبوس میگه آقا الان فکر میکنی چه کسی اونجاست گرجیبوس باید با اطمینان میگه آقای طبیب و برادرش نارسیس گرورنر که متوجه کلک سگانارل شده میگه لعنت به شیطون اونا یه نفرن سگانارل دم پنجره ایستاده و میگه ای مست ملنگ ببینید چطور نگاهش رو پایین انداخته ملعون بالاخره داره میفهمه که خطا کرده به ببینید چه مقدس بازیی در میاره. گرورنه به گرجیبوس میگه آه لطف کنید بهش بگید برادرش رو هم بیاره دم پنجره. گرژیبوس میگه که خیلی خوب جناب طبیب. لطفا اگر میشه برادرتون رو بیارید دم پنجره و نشون بدید. سیگانارل از لب پنجره میگه که است نگاه افراد شریف به اون بیفته. بعدش هم دیگه بیشتر از این نمیتونم تحملش کنم. گر میگه جناب طبیب خواهش میکنم بعد از این همه لطفی که در حق من کردید این که درخواست رو هم قبول کنید سگانارل میگه آقای گورجی بوز حقیقتا شما انقدر روی من تاثیر دارید که نمیتونم به هیچ وجه درخواستتون رو رد کنم هی خبیس به جلو ببینم بیا خودتونشون نشون بده سگانارل اینو میگه بعد یه لحظه ناپدید میشه بعد با لباس نوکری برمیگرده به پنجره و با صدای خودش میگه آقای گورجی من نوکر شما بعد دوباره غیبش میزنه و بعد دوباره با لباس تبابت دم پنجره ظاهر میشه و بعد با صدای طبیب میگه که بسیار خوب دیدین عیاش رو گرورنه میگه لعنت به شیطون آقا اونا یکی هن برای بهتون ثابت کنم بهش بگید که میخوایید هر دو نفرشون رو همزمان ببینید گرجی بوس به سگانارل میگه لطف میکنید با برادرتون بیاید جلوی پنجره و جلوی چشم من همدیگر رو ببوسید سگانارل از لب پنجره میگه به خدا اگر کسی دیگه از این درخواست رو میکرد قبول نمیکردم ولی من چون خیلی شما رو دوست دارم حاضرم هر کاری بکنم هرچند سخته ولی قبوله بعد با صدای خودش میگه بله آقای گورجیبوس از شما عذر میخوام که این همه زحمتتون دادم برادر عزیزم در حضور آقای گورجیبوس که اینجا تشریف آوردن بهتون قول میدم که بعد از این هیچ خطایی از من نبینید خواهش میکنم گذشته رو فراموش کنید. بعد لباس و یقی چیندار و کلایی که روی آرنج خودش انداختر رو با خودش میاره جلوی پنجره. جوری که انگار دو نفرن و بعد به کلا بوسه میزنه. گرجی بوس با خوشحالی رو به گرورنه میکنه و میگه که بفرما هر دوتا دیدی؟ گرورنه که گیت شده با تجب میگه بابا لعنت به شیطان اون جادوگره. سگانارل با لباس تبابتش از اتاق بیرون میره و هم میگه که بفرمایید اینم کلید اتاق ترجیح میدم که این آدم دنبال من نیاد چون خوشم نمیاد کنار من را بره دوست ندارم توی شهر ما رو با هم ببینن هر وقت صلاح دونستید اونو از اتاق بیارید بیرون روزتون بخیر چاکر شما بعد وانمود میکنه که داره میره ولی بلافاصله لباسشو در میاره و از پنجره بیرون اتاق توی اتاق گورجی میگه بهتر برم این تفلک بیچاره رو از اتاق آزاد کنم. بعد وارد اتاق میشه و همراه با سگانارل که لباس نوکری تنش کرده میاد بیرون. سگانارل رو به گورجی میگه که آقا به خاطر زحماتی که برام کشید خیلی ازتون ممنونم تا عمر دارم دعاگوتونم. گوررن میاد و رو به گورجی میکنه و میگه فکر میکنید آقای طبیب کجاست؟ گرجیبوس میگه رفت دیگه گرور که لباس تبابت سگانارل رو از روی زمین برداشته و آورده نشون میده به بوس و میگه نه خیر قربان اون الان تو دست منه این مرد خبیس تمام این مدت داشته نقش طبیب رو بازی میکرده و خودش رو جایی دو نفر جا زده که شما رو گول بزنه در همین حالی هم که داشته شما رو گول میزده والر و دخترتون دست تو دست هم میخوان از اینجا برن گرژیبوس و میگه عصبان و تو مرد حقباز باز و خبیس رو دار میزنم. سگانارل با ترس میگه قربان، دار زدن من چه فایده ای براتون داره؟ لطفاً حرف من گوش کنین. درسته که اربابم با ترفند الان کنار دخترتونه، اما من که به شما بدی نکردم. اون مرد برای دخترتون مورد مناسبیه. حرفمو باور کنید. لطفا داد و بیداد راه نندازید. بعد گرورنه اشاره میکنه و میگه این مردک نابکار رو هم همراه با ویلبروکن از خونه بفرستید به جهنم. آهان، بفرمایید این هم دلدار و دلداده که دارم میان. گرجیبوس هم که میبینه دخترش خوشحال و راضیه میگه من شما رو میبخشم. خیلی خوشحالم که با ترفند و کلک سگانارل دامادی به این خوبی نصیبم شده. الانم بریم، بسات عروسی رو بچینیم و به سلامتی همگی لبیتر کنیم. چیزی که شنیدید نمایشنامه یه طبیب پرنده اثر مولیر بود. طبیب پرنده یکی از اولین تجربه های نمایشنامه نویسی مولیر حساب میشه. این نمایشنامه اثری ساده است و میشه اون رو یک اقتباس از نمایشنامه های ایتالیایی به خصوص نمایشنامه به نام مدیکو ولونته به معنای طبیب پرنده دونست. یک سبکی در تازه وجود داره به اسم کمدیا دل آرته کمدی دل آرت هم شاید چنیده باشید که از قرن 16 تا 18 میلادی تو ایتالیا به وجود اومد و الان البته تقریبا منسوخ شده اما معاصر زمان مولیر بوده و مولیر در برخی از نمایش از این سبک کمدی الهام گرفته تو کمدیا دل آرته چندین تایپ شخصیتی تعریف شدن که هر کدوم یه اسمی دارن و یه سری تر لباس مشخص دارن و البته اکثرشون ماسک به صورت میزنن این تایپ شخصیتی در کمدی دل در چهار دسته دسته بندی میشن که همه انواع شخصیت این سبک کمدی توی این نمایشنامه حضور دارن مولیر این نمایشنامه رو اولین بار در سال 1658 مقابل شاه اجرا کرد و تا سال 1664 در کل 17 بار روی صحنه رفت. این نمایشنامه که ریتم سری و حرکات بدنی مزهک و خندهدار زیادی داره، خیلی ساده و با کمترین میزان راهنمایی برای بازیگران نوشته شده و بخشی از کار به خود بازیگر سپرده شده تا با خلاقیت و هنرمندی خودش نقش رو اجرا کنه. این مسئله هم یکی دیگه از ویژگی‌های کمدیا دل آرت است که مولیر هم ازش استفاده کرده خود مولیر در این نمایشنامه زمانی که اجرا می برد نمایشنامه رو نقش سگانارل رو بازی می‌کرد طبیعتاً و بعد از نوشتن تبیب پرنده هم چند تا از های محبوبش در این نمایشنامه رو به دو تا از نمایشنامه‌های دیگرش هم برد یعنی حداقل مشخصه که خودش این نمایشنامه رو بسیار دوست داشته. این نمایشنامه در نقد به جامعه پزشکان و وسعت‌های مسخره اون زمان نوشته شده. و بسیار ساده و در این حال واقعا بامزده است و بعد از گذشت چند قرن هنوز هم تازگی داره اگر شما در انتهای این قسمت فکر میکنید اونقدری که من تاکید دارم بامزده نیست باید اجرای اون تیکه آخر نمایشنامه رو تصور کنید جایی که سگنارل مدام از شخصیت طبیب به شخصیت نوکر تغییر نقش میده به نظرم در اجرا این نمایشنامه با بازیگرای خوب خیلی میتونه. خوب در بیاد و بامزه باشه اگر این نمایش شما رو دوست داشتید برامون بنویسید اگر در مورد خود پادکست نظری دارید حتما برای ما کامنت بگذارید این کامنت های شما خیلی برای ما مهمه خیلی به ما انگیزه میده و انرژی ماست برای ادامه دادن کار پادکست رو حتما به دوستانتون معرفی کنید از اینکه پادکست رو گوش میدید کجا گوش میدید اگر موقع کار گوش میدید اگر موقع مسافرت توی ماشین گوش میدید و به هر کیفیتی که این پادکست به گوش شما میرسه ویدیو بگیرید، استوری کنید، پادکست سالف رو در اینستاگرام تک کنید، این هم به من خیلی انگیزه میده، خیلی هم حمایت خوبی از من، هم خود به خود به مخاطبان شما در اون شبکه اجتماعی معرفی میشه. البته راه دیگه ای هم هست کل این که برید پادکست سالف رو به دوستانتون به صورت سینه به سینه منتقل کنید و بهشون بگید کمچین پادکسی هست و نمایشنامه ها رو روایت میکنه مخصوصا برای کسایی که نمایشنامه می خونن و به تئاتر علاقه مندن هم حمایت بزرگی از ماست هم شاید اونا یک محتوایی رو پیدا کنن که باهاش کیف کنن راضی باشن و لذت ببرن این تنها راه تبلیغ و بیشتر شینده شدن پادکست های شبیه الفه که کاملا مستقل دارن کار میکنن و تنها امید و پشتوانه شون در نهایت ممنونم از حسین تاکی که زحمت نوشتن متن این قسمت از پادکست علیف رو عهده داشته، سینا سعدی عزیزم که مثل همیشه زحمت تدوین رو کشیده و محدیس سفری که متن رو برای ما ویرایش کرده. مشخصات نمایش توی توضیحات این پادکست وجود داره که میتونید تهیه کنید و نسخه کاملش رو هم خودتون بخونید. من مهدی خدادادی هستم و اینجا قسمت 26 پادکست علف که در اردی بهشت 1403 زبط و پخش میشه به پایان رسید. با آرزوی سلامتی و طول عمر برای استاد بزرگوار فخر هنر نمایشی ایران زمین بهرام بیزایی. این نقش ماند از غلمت یادگار عمر. میتنایید